من خونه باده بگیم یه خوفو چیدیم من بکندمش یه مرتزا جمع و جور شدنم سخته آنه سخته ولی شدنی نیه نه نه تو چی میخوندی؟ چی به وقتی بچه بود به بچه گیم بخواستم تو غذاب مرگه بوش برسد شما اگه چی شده؟ <تصفيق> E mismege. Her kudunu ucu bacıya atış misuzundin, hajvazi ha sextamunu tamir edir. Am wala mi neces. Ame karbadar da chavash mi ger. E şumo karbad ne mi kerdin, ame karbadar men mi kerdin. Bi ana da نداشتن ببینیش دروغ میگه اینه چی نمیدم این همه برو از کجا میاره با دن تو کلش که برو افقاده چاوش بپرس چاوش نفسش بالا پایی میره به خاطر مهداب با هیچ هم هیچ سممی نداره من خواهر زدم و بزرگ کردم آشو دهنسوزی نیست اما رو مهداب زن نمیاره عمرم چرا حق بشته میکنی؟ چرا؟ منو حلی مره میگم دیگه تو ماه نهی اومد عروسی به هم خورده تو میگی چرا پلوه شبته شده؟ بشین وقتی عاطفه؟ بزرگتر بچه های بدری شد، اوزایی شد چشم همچشمی شد خودشون رو صد دیدن، بقیه رو رد دیدن بچه ها بزرگتر میخوان. آدمیزا تو لب گور بزرگتر میخواد آشفتهی، بیقراری قرار بگی، توکر محکم وای خودت بای بزرگترشون شد من ترسیدم ترسیدم سهم من از آشفت شدنشون چقدر آشفت شدن بچه بای بدری من اداده می داد با عشق هارو بگیره تو عاشق زنتی زنیدی که طلاق دادی چپ دیری راست می تو خونه من پیدست می شه بر باره با خونه من که خشل گله بلوتش حلیمه خانومه افتار کن این روزه دوبی رو اگه قرار بگیری عشق پاوندت کنه اون وقت بزرگشن اینا میشی دیگه ایز زنی هم پیده نمیشه بند کنه به جا باش خیلالی باور نمی کنم این زنه تیمور راست بگه اما باور کن شریع نبوستان راست میگه کن این شکل و قیافه رو یه شکل قیافه دیگه ای باز خود دلم کن همه اش خیلی میگیم قدیما قدیما قدیما اینجوری بود قدیما خوب بود نمیدام ادالت بود وفاقت بود خب الان قدیما نیست یا قدیما رو بگیریم تو جدید اون موقع یه مصیبتی بلای چیزی می اومد و او شادی ردش کردیم بره یه حالا همون کارو بکنی خدا رو شد حالش خوبه عیادت کس کارش تنوشه میتونی بری ببینیش کجا آقا کریم یه استوکل خواستی کاری مگه نمیخواستی چاوشو ببینیم بزرگترشی بیره توکل بیره اگه تو باش قرنش نید آسوگه زنمه نیس چه گرای پیشش داری اینجوری حرف شما رو مون میکنی هی چی شد یه همه چی اینجوری شد شما شامنه اخت آقام تهبیرم نگرف ایشگی تهبیرم نگرف آقام حتی تو خالا تهبیرم نگرف بایی چی گرهی پیششتری یکی جلی قرص پاشوار سدی نمیه که چشمم کور. نمیه که سمکم. تایی حاجی فخر صاحب است. من ازت می‌خواستم. تو بوزرین زنه هر چی میخواد بر ببره. فوجرد، منسه، ساختمون هر چی ایناگه برنامه داره میره سراغ محربا. قربیدرا. من مطمئنم رو مرتب زن نمیگیری. من نمیجام. سنده نیست هم هستم نیست شایی درست حرف بزن ببینم داری چی میگی درسته چه خب همون اولش گفتم بذارین این زنه هرچی میخواد جارو کنه مرد رو ببره بذار جارو کنه ببره مهد آبودریان هنیف آبودریان خدا همه شهر رو انگوشتونه کردن پیداش نیست که نیست اونجا چه خبر؟ اینجا عوضا خیطه داغون تنها خبر خوش به گفتن <مخن> حلیمه است به توکر واقعا دایی شب دومادیش لباشتو تو عوض میکنه دیگه نه وقت دایی آلاگارسون بود باید میدیدیش ما که ایچی پهلاً صفت و سخت با بالا سر خونواده بدرین میخواد سر تناب و دست بگیر. سلام سلام ایلا دارم با بابا دیلا آمد خودت خوب بری برگردی بهتر پیداش میکنم بابا اول باسه خودت پیداش کنم خود. میدونیسی <تصفح> دایی دایی دامات میشه ستار میگه دایی میخواد دومات بشه با حلیمه لیلا پیداش کن بابا ماجرای این زنه داره ویخ پیدا میکنه حجره ها که همه تعطیل بسته هست معطاب هم که دوبه شکه حنیف هم که یه وقتی شهر بود الان حیرون سرگردون حیرون سیلون مونده کلید این گفت آرازه میفرمی چی میگم بابا بله فهمیدم Aras. Peidu õško mamacom. Peidu داشت رو دا بکرمو صاحب, صاحب کارش پیدش کرد توی یه کافر و مرداب کار میکنه لیلا رو فرستادم گفتم زن شوهر حرف بزنم با هم بهزری نه آره آره فکر کنم توکل به خدا سلام آره من نرگستم خواهر محتاب محتاب زن چاوش آها همی؟ نه <تصفح> آقا توکلو میشه اینجا پیدا کرد؟ اینجا تو میدون؟ تو میدون که نبود الان هم اینجا نیست چیزی شده؟ بابا میخواست بره سراغش نذاشتین. یعنی من مامانم ماما نذاشتیم نزاشتیم تا فشارش نره بالا تا این زنه کیه؟ چاوش نمیگه خودش نمیگه اومده حجره ها رو زنجیر کرده حرفمون حجره ها نیست حرفمون خوهر همه. داره خل میشه دیوونه میشه این زنه زنشه ارتباطی هست بینشون بالا چابش میگه نیست شما چی میگی؟ من؟ من که بزرگترش نیستم خب مطلعه هستین اون هم نیستم دخترم فقط میدونم سلام آ هم دعوت این زنه کیه؟ اسمش افثانه است؟ زنه که هر اسمی زن چاوش نیست خب پس کیه؟ چاوش میگفت زن شریک مرمومشه زن شریک مرمومش اومده همه حجره ها رو گفت و زنجیر کرده؟ برای این سؤال جوابی ندارم ولی برای سؤال اول جواب دارم زنش نیست شما که میگفتی متعله نیستی؟ ولی از عشق چاوش به زنش متعله ببین دکتر جون مردی که زانو میزنه جلو زنش التماس میکنه دلش رو دست بیاره می اوم میره سراغ زنه دیگه ما میخوایم اینجوری فرض کنیم یا درست حسابی بگه کیا یا ما اینجوری فرض میکنیم فرض بدیه دخته جم خوهرت کجاست خونه ما نمیاد بابام نفهمه حالش بده خونه خواهر شوهرش امروز مرخست میشه. نمیخوایی بری بیمارستان چاوش آرازو تو بزرگ کردی؟ و هنیف خودم بچه بودم ولی بچه بزرگ کردم سخت بی پدر بچه بزرگ کردن؟ سخته <تصفيق> به نظر از پسش برمیام تو طلاقم فکرت رفته؟ پشت ده تا دور بین مسته تو حجرهاش خشت خشت حجرهاشو چک میکنه حواسش به جبه جبه خیار موز پرتقال کف زهرمان هست بعد این چابوش یه نفر رفته حجرهاشو مفل زنجیر کرده آخ نگفته اون گفت که نه نگفت نمیگه فقط میگه زن شریکمه زن شریکمه که بهش بده کارم تانا کجا بود این طلبگاه چه شریکی پشت حجره ازش طلب داره چه شریکی که تو زندان مرده من خراب بجم بشیم بله سلام خواستم بگم پیداش کردم آره الان جلومه یاره ماهی کباب میکنم آره بخواستم بگم ناصر اسی زنی شی آره چه قشنگی شما خیلی قشنگی مرسی که در اخم بگو دی چیزو نیم نمیشینی؟ اجازه نداریم سرمیز مشتری بشینی من مشتریم من مشتریم من مشتریم اگه من مشتریم یا میمهی بر کباب شده یکی دیگه برسون کباب بکنم سهران داداشتو کباب میکنه چابوشو یه زن همین حجراشو گفت زده بعد سکته قریه چابوش کمک آرازو میخواد کمک برادر جان ها هجرا بازشو برگردیم سر کار از دیزی میزی خبر نیست بسید شکن باید پر بشه که میشه دیگه نه سلام نه علیک نه طارف قضا میخورید در حالی که گوشاتون بازه و زبونتون کار بکنه متوجه شدید 15 شموزه روزه که هجرا بستهست بردم. بردم. من شمردم. زن کیه؟ زن کیه؟ تو میدون کسی زبون نداره؟ جرأت نداره؟ من زن چاوشم. چاوش پسر حاج بدری نخلی. همتون توی این میدون کار می‌کنید. هم چاوشو می‌شناسید. هم میدونید 5 تا حجره داره. 15 16 روزه که بسته شده. تا اینجا مثل منید شما میدونید چرا و من نمیدونم میگن یه زن بسته میدونید اون زن کیه؟ ها؟ ترس از شاباش دارید؟ مگه میشه اینجا اتفاقی بیفته و کسی خبر نداشته باشه خودش گوشه بیمارستانه و حرف نمیزنه شاگرداش حرف نمیزنن داداشه ایش تربه نیست رفته هنیف نه خونه میره نه حجره نه خودشو نشون میده خواهرش میگه نمیدونم کریم بوستان میگه نمیدونم داییش میگه نمیدونم من میدونم ایلی شای شیروانی نار هستم حجره مطلانی آنو تپشمشم اللہ نارم کتولدی گد حجره کجی بسته کسی مطلع نشون میدی بعد میری؟ دورو برد نگاه کردی؟ پرو چشم بود شوهرشو میشو شوهر زنی که حجرار و غفل زنجی کرده سلامت نبود بیوه از باغدار میخریدن میفرستن صدخونهشو وقتی تو میدون کم بودش پیش میمد میریختن تو میدون با قیمت خودشون وقتی سرفونه لورف میگن تیمور گردن گرفته به شرط شروع که چاوش نره زندان فون زد دونج از پنجت حجره چاوش ماله اون ولی از زندان بر نگشت همونجا سکتی کرد بود این که میگه زنشم الله و الله کفت زنشم نمیدونستون به قول خودت 15-16 روزه دخترم چقدر از شوهرم نپوستیم گرسیگرم اما اینه بده که نمیاد که نیزنشه من همچی چیزی از آدم ما بستقی نشمیدم خجراتو شوهرم چی چیستده هنیف سگه زرد برادر شغاله کته با اومدم ببینم خودم کیم بچم چه بابای نصیبه شده هر هردم از این باغبری میرسم. بچه مردم رو داشته آتیش میزده خونه زن مردم رو داشته آتیش میزده حالا که میگه قاچاق نسی که زندان بوده باش داده که نرفته وگرنه سابقه دار بوده من با کی طرفم اقای مرد بد که دوست دارم بگم زود واسه مارخست شدن بی خود میگم ازت دل خورن که لباسو بیمارستانو تنت نمیکنی بی خود میکنم بگیم من امروز از اینجا میزنم بیرون عاطفه من از اینجا میزنم بیرون امروز حریف امروز از زندان آزاد میشه اون زنه میخواد بیارتش بیرون بعد من بیرم سراخون. یکی زنه ببینم چی میگه چه بد حرف میزنی زنه زنه زنه زنه خودت که مردی کجای دانیاری گرفتی دکتر بهت نمی فاهم بحث بر قلبم خوب نیست به محتاب بگو چه شده چرا نمیده سر خون زندگیمون؟ ما چرا نمیاد اینجا با من سر بزنه خونه عشقی ها که نیست پیش منه میدونم من چه کردم که پا خونه نمیذاره داداش اسم یه زن دیگ سوخی مگه واسه مهتا خلاف کردی دیگه من چه خلافی کردم من چه خلافی کردم من فقط رفاقت کردم در حق رفیقم اه سردخونه خواست منم بهش سردخونه دادم من چه میدونستم میخواد بره میواز باغدار بگیر احتکار کنه براهم که گرفتنش کردن گرفتگی چون من اصلاً چیزی نمیدونستم روحم هم, هم خبر نداشت میگه زنته طانو ولکم من میگم حنیف بگیر اون شماره کوفتیو ببینم آزاد شد یا نه 15 دنگ از 5 رو قرار گذاشتن رو کاغذ واسه تیمور کشور مردهشه که همچین چیزی گفته ؟ افسانه؟ بیخود گفته من میدونم دردش کجاست کجاست کج بشین راست به گودادش کجاست ها حالا ول کن کج بشین راست میدون بگیر شما را هنیفو ببینم آزاد شد یا نه بریم سلام آره سلام بریم زنی میذری به محراف میگی میخوام جبران کنم میگه میخوام من میدونم چه غلطی کردم منشه اون غلط رو بلش کن الان کار درسته انجام میدی. الان اون کاری که من گفتم طبق قول و قرارمون میکنی با محراب میخونه من میگم تو میخندی تو میگی من میخندم یک کاری میکنی با فیال راحت برستم سربازش خب به جان بچم هنیز اگه بخوای از رضایتی که دادم سو استفاده کنی اگه بخوای زیر قول و قرارمون مزنی حواست به من باشه. سلام اجی. انیف. منم چوبوش. اومدی بیرون. خير خدا ببین هر جا اکسیسوری گازشو رو که بیا بیمارستان. خب. چرا خير باشه؟ سکته؟ کدوم بیمارستان؟ اونم خود شما ده. ولی شما ل من تو خونه نمایش را انداختم. حالا سکته کرده. رد کرده بابا. من بابایی تو شوهرتم. نیستی هستم و میخوام باشم غلط کردم به آفه بند الک تماس کردم دارم ولی الان نه الان فقط خوانه داشت خیلی خوب با ماشین من میری فقط حواست باشه بعدش با ما میخونه آفه فهمیدی؟ شه. بس تابه غلط خوب نیست خوبی خوب نداشت بزنم تو گوشت خب من بزنم تو گوشت که گفتم بزن نوشت جونم بزن بین دو نمون چی گفتم برام ریختم خود نداشت هر وقت یادون سحنه میوفتم اصلابان میرزه بخم خوب گوش کنم چی میگم حجرا غفر زنجی شده خواه چی میگم میگه چی سمت حجرا نمیری من یه گاف دادم آتیش به پا نمی کنی گفت و زنجیر ما از و جاور نمی داری گفت چی؟ گفت سر مهتوب می فرقم من تو چیه؟ من از داشت شکارت نکردم ولی تو کردی نمی ساعت به من قرضش بده بعد دیگه بیخیریش خودت بسه آه یادم نبود جلو خوانده داشت صدا و باید تنظیم باشه هنیف <تصفيق> یه وقت گوش نشینی نکنی ها ببین این زن با این موضوع داگونه شماده سراختو حرف من نظرن خواه بباشیم نمیشه کسیش باز شروع شد تو اصلا جواب دادن عادت چدا سمت میدون نمیری سراخه اجرام نمیری خلاص که اینو خسی <تصفيق> همیه الان بله خسرم ولی بی مهدا پا خونه نمیذارم اینا رو بهش بگی یا میگی اون زنکیه چا یک کلام میگی اون زنکیه یا نه مار این مار چرا میتونه حجرات رو گفت کنه میم تصریح صف کنم ما اینجوری نبودیم ما اینجوری نبودیم خانم آقامون هم اینجوری نبود. بلد بود با زنش، با همسرش، با خانمش چطوری رفتار کنه. حنیفو نزنی جای آقامون. به مهتابم میگم که تو رو نزنه پای آقامون. زشت عاطفه تو. تو دستونی که زنه بلند شد رفت حجراتو، باشه. جرأت نداری بگی کیه؟ جرأت نداری قفیشو بکوبی تو سرش، بکشیش پای میز قانون. میزنم تو گوشت. رسوات میکنم از همه جا موندت می اگه همین الان، همین الان نگی اون زنه کیه. زنمه. زنمه به محتاب بگی گردنمو زدنمو ببین که بهت گفتم نفروشی منو آبجیم راست بگه ما اینجوری نبودیم ما اینجوری نبودیم ما اینجوری مردی نکردیم برای زنمو ولی چکنم خریت دارم دیگه اونم خریت داره که تو رو گرفته ببین تو خوب خانم تو عالی ولی من یه عرفی دارم تو عرف من پسر و دختر بگیره همین عرفت هم میگه باید بری یه زن بگیری؟ من غلط زیادی کردم من گفتم تو از دور دست من رو نمیسی کنی عرف خودم رو گفتم که کینه به دل نگیری آب راست میگه ما اینجوری نبودیم اینجوری هم نیستیم بلی شدی بشین آقا بزر شده بمیرام نمیذارم محتاب بفهمه تو رد دیگه نگون مرگ خونده داشت بفرمایت بیتری رو کاغذ پاکتشیوارم به نوی سین اینجا برای بانون سنده تو خلاف کردی نگه ببین من هنوز انقدر گیاندم در نمیواره که به دو ماه جماعت توزیه بدم دردم خلاف نیست آخه کل چارتو تمور یه ساختمونمونه منو که اونم دو ماه توزیه بده عجب بشینم راست بگم. خود راست میشینم راست میگم. فعلا دور و برمون ورجه و نپلکید. دستم به قفل و زنجیرش نزنید. من خودم میرم ها. نه هوا بود نه حواس، نه عرف. تعریف مردونگی با سر کسی یه جوره. تو تعریف منم گنجید که من بچه‌دار نمیشم. در همجل میگم و میدونم ده میشم میدونم سرکوف میشم ولی نه هوا بوده نه هواست خس شد شیروالینا میشستی میدونیه چطور پیشش بودم بسی چی؟ اون زنه که اومده حج راه رو بسته شیرونی دشمن چابوشه هرچی که گفته بابر نکنه گفت چابوش دوست داره خوبه؟ اولین حرف راست زندگیشو زده یه مرد بد که دوستت داره نه دیگه بعدش از سر دوشمنی هرچی هست بیوه خونه خوار شوهر میتونم بمونم نگو تو رو خدا پس نمونم قدمت رو چشم از طلاق نگو نگو بربونت برم من. باچ داده که زندان نره منم اگر بودم باچ میدادم تو نمی نمیدادی؟ من خطا نمی کردم که به باچ برسیم حاله که رسیده خدا روشد که زنده دیگه چیزش نیست چیز باچ گیره من پول عزیزم زدم؟ یه چاباش میشی وقتی اینهای دروغ بگیر این آخرها دروغ زیادی گفت. من اینجا میمونم تو خونه بابام نرم تو قصده خوره طلاق نمیگیرم اون تو خونه خودش تنها زندگی کنه من اینجا میمونم چاباش نیود بیاد رفتم حلیف نیاد چاباش نیاد منم زنم رو ببینید من که دارم بسته نمیدونه تو رفتن لازم داری منم رفتن تو رو بزن دارم اختی دوست دارم کجا افصاله چاقوشار تیمون خوچاقه میبینی نه من من پسر بطری هم بطری هنش دو حجره یا چه بده محتاب ببر بطری بطری oo برگرد و بیا دل تنگ دیدم بغض شب تو کردم من هر چه دارم ز تو زخم مش برودم دیدم آهوفتم آهوفتون اجرو کسانم دیدم اجرو کسانم